فصل سوم برای درک موقعیت خانواده در هالیوود در آن روزها باید تاریخچه وقایعی را بدانید که پدرم را از گمنامی خیابانهای شلوغ و کثیف لندن به جایگاه برجسته‌اش در هالیوود انداخت و او را به عنوان سلطان کمدی مشهور کرد موفقیت سری پدرم در این شهر همیشه یکی از بهترین حوادث زندگی عصر ما شمرده می شود. اما فقط باید گفت که این معجزه نتیجه آن بود که پدرم توانست از وقای جانفرسای دوران کودکیش جان به در ببرد. در آن دوران هر رنج تازه چیزی روشن و درخشان بر قریهه او می و روح کمدی را در او ایجاد می کرد که هرگز از بین نمی رفت. این کمدی ریشی امیق داشت ریشی آن در تراژدی زندگی بود اولین بار هنگامی که پدرم هشت ساله بود و در دسته هشت جوان لانکا در لندن روی صحنه ظاهر شد توجه تماشاگران به سوی او جلب شد یکی از شبها تالار را با خنده تماشاگران لرزاند، زیرا یک صحنه بدیع حقیقی را نمایش داد با تغییر لباس به شکل سگی در آمده بود. ابتدا پای خود را بلند کرد و در کنار درختی توقف کرد و سپس به میان سگهای کوچک دیگر رفت و آنها را بو کشید. مدیر تاعتر از ترس آنکه مبادا پلیس تماشاخانه را بمندد در اولین فرصت او را بیرون کرد. در سن ده سالگی او دوباره با دسته شلو کالمز در شمال کشور به مسافرت پرداخت. این بار نقش بیلی پسرک واکسن به عهده او بود. سالها بعد که من در باره کارهای تئاتری با او صحبت می کردم، پدرم می گفت: «آه، می دانی من هنر پیشی تئاتر هم هستم. یک تجربه مختصری از بازی روی صحنه دارم. من ابتدا تصور کردم که او خواهد گفت نقش حاملت یا سیرانو را در نمایش بازی می کرده است ولی او گفت: برای بله من وقتی چهارده ساله بودم در نمایش شلو نقش بیلی پسرک واکسند را به عهده داشتم. من که این سخنان پدرم را با این احساس جدایی و دوری آواز صحنه نمایش می شنیدم همیشه به این فکر می افتادم که شاید او در نهان کار نمایش را به سینما و پانتومیم ترجیح می دهد. پدرم در حدود 17 سال داشت که به همراه امو سیدنی به گروه فرد کارنو بیمست. او هرگز در انگلستان نقش اصلی به عهده نداشت بلکه همیشه نقش‌های فرعی را بازی میکرد. وقتی دسته کارنو در اروپا مسافرت میکرد یک بار دیگر پدرم با تکرار سحنهی که در هشت سالگی در لندن ابدا کرده بود تئاتر فولی پاریس را از خنده به لرزه در یک شب کلود دبوسی آهنگساز معروف که در میان تماشا بود او را دعوت کرد و به او از سمیم قلب تحنیت گفت پدرم همیشه آن لحظاتی را که با دبوسی گذرانده است از درخشان ترین ساعت کار هنر خود می داند. او اغلب این ماجره را هنگامی که من کوچک بودم برایم تعریف می کرد. این کارهای بی پدرم حتی در های کوچک بود که سبب شد که به مسافرت دومین دسته کارنو که این بار در آمریکا بود دعوت شود. افتخار آمدن او به آمریکا متعلق به آمیریو همسر آلفرت ریوی فقید است. در آن موقع آلفرت مسئول نام نویسی و هنرمندان برای شرکت در این دومین دسته بود. آمی اولین بار در 1909 به قریحه پدرم پیپرده بود. او در آن موقع هنوز ازدواج نکرده بود و به عنوان رقاس در دسته کارنو کار می کرد و همراه پدرم نخش های کوچکی در بعض نمایش ها به آهده داشت. اما سیدنی ستاره این نمایش ها بود. یک سال بعد پس از آنکه که با بالفرد ازدواج کرد و همراه او و دومین دسته کارنو در آمریکا می گشت به یاد پدرم افتاد. در آن زمان آقای ریو دچار بلایی شده بود که به سر همه کارگردانان میآید. بهترین هنرپیشه کمدی او به هوای پول بیشتری او را ترک کرده بود. او به لندن برگشت و به پیشنهاد آمی سری به یکی از نمایش‌های پدرم زد. فل مجلس با او قراردادی امضا کرد و پدرم را به عنوان ستاره نمایش با خودشان به آمریکا برد. این جریان در سال 1901 اتفاق افتاد. پدرم با این دسته سه سال تمام آمریکا را گشت. در سال 1912 پیشنهادی از یک هنرپیشه کمدی معروف دیگر ادوین که بعدها دوست نزدیک او شد دریافت کرد ادوین که در آن موقع خودش دستهای داشت کار پدرم را دید و چنان پسندید که به پدرم پیشنهاد کرد به دسته او بپیوندد و هفته 65 دلار حقوق بگیرد پدرم هفتاد و پنج در هفته پیشنهاد کرد. آقای گتوین سرش را تکان داد و گفت شما هیچ وقت در این کشور همچه پولی در نخواهید آورد. در سال 1913 بابا اولین قرارداد و شرکت در فیلم را بست. او در فیلادلفیا بود که تلگرامی از آدم کسل دریافت کرد. در تلگرام از او خواهش کرده بودند که با دفتر کسل و با امان صاحب مؤسسه فیلمبرداری کیستان فیلمز تماس بگیرد. تلگرام خطاب آقای چارلز چایمان به چای چارلز چاپلین نوشته شده بود. در واقع این ماکسنت بود که باعث فرستادن این تلگرام شده بود. او در بازدیدی تصادفی که از تالار موسیقی آمریکایی کرده بود به استداه پدرم را کشف کرد. در موقع پدرم نقش یک نفر مست را در نمایش شبی در یک کابرگ انگلیسی بازی می کرد. آقای سنت می گوید اگرچه او مرد بزرگی بود. اما گمان می کنم اگر آن روز مرا در تئاتر نیویورک ندیده بود احتمالاً به انگلستان برمیگشت او در عرصای نمایش هنرپیشه بزرگی می شد. اما در بارگ فیلم این تصور را نمی کنم. چون در آن روزها در انگلستان فیلم کمدی نمیساختند تنها جای این کار هالیوود بود. اما عقیده پدرم در آینده خودش که اگر آن روز تصادفاً آقای سنت را نمیدید چه می با عقیده آقای سنت تفاوت بسیار دارد. پدرم می گوید که او و همکاران نمایشگرش پول خود را پسنداز می کردند تا در آرکانزاس مزرعی بخرند و خود پرورش دهند. پدرم قبل از رفتن به هالیوود مدت ها در حال تردید به سر می برد. جای او در دسته فرت کارنا محکم بود و به عنوان هنرپیشه اول نمایش هفته پنجاه دلار درآمد داشت. حتی موقعی که با کیستون فیلمز قراردادی امضا کرد که رقم نجومی هفته و 150 دلار دریافت کند، هنوز هم معتقد نبود که کار درستی کرده است. شک داشت که آیا این محیط جدید برایش قابل دوام خواهد بود یا نه و آیا میتواند خود را به آن تطبیق بدهد یا نه ماکسنت هم اولین باری که پدرم را بدون گریم دید باید در این عقیده با او همراه بوده باشد آمی ریفز می میگوید جوانی فوقالعادهٔ پدرم همه را به حیرت میانداخت زیرا قیافهٔ او با گریم مانند مردی چهل و پنج ساله مینمود آقای سنت که پدرم را بدون گیریم دیده بود قلبش فرو ریخته و پرسیده بود راستی شما همان مرد مست نمایش هستید؟ پدرم در جواب او یک حرکت خنده آور و سپس تعظیم می کرده بود. در واقع این کار برای آن بود که پدرم اعتماد و اطمینانی به کار تازه خود نداشت و میخواست عدم اطمینان خود را بپوشاند. در سالهای بعد خود او اعتراف می از موقعی که پایش به هالیوود رسید تا سه سال تهیج عصبی مانع آن می شد که در استودیو ظاهر شود و فقط تلفن آقای سنت به مهمان خانی محقری در بنکرهیل که پدرم بر آن زندگی می کرد سبب شد که بابا از مخفیگاه خود بیرون بیاید. وقتی پدرم در استودیو ظاهر شد به او چپ چپ نگاه می کردند. فرد استرلینگ که پدرم جانشین او شده بود، سر تا پای او را ورانداز کرد و شلیک که خنده را سر داد و به آقای سنت گفت: "ماک، خوب گیرت آوردند یک آدم خام و که ابدا از فیلم سر در نمی آورد گیرت آورده است." بیشتر کارکنان مؤسسه فیلمبرداری با نظر استرلینگ موافق بودند. پدرم از لحاظ گفتار و حرکات آنقدر انگلیسی بود حتی فیلم را با کلمه انگلیسی آمیانه آنولیکا نامی برد که هیچکس نمی توانست از علت آمدن او به آمریکا سر در بیاورد. او آدم خجول و خودداری بود که با نان بخور و نمیری می میساخت و در مهمانخانه محقرش برای خود زندگی میکرد. مثل اهالی بومی لندن صرف جوب بود. یک روز به آقای سنت گفته بود هر وقت صد هزار دلار جمع کند از کار کنار خواهد گرفت. من گمان میکنم کنم که او در آن موقع هم مثل بعدها این مطلب را جدی می گفت. صحبت کردن و اندیشیدن در باره کنارگیری از کار و بازنشستگی از همان روزها هر چند وقت یک بار گریبان پدرم را میگیرد. گیرد. من به نمی آورم که پدرم یک فیلم بزرگ را تمام کرده باشد و بعد از اتمام آن نگفته باشد که این آخرین فیلم من است و برای همیشه از کار دست برخواهم داشت. شوخ طبعی زریف پدرم در کیستون ناوه جا به نظر میآمد. زیرا آنجا مثل یک خانواده شلوغ و پرسر صدا بود. افراد از کوچک و بزرگ یک دیگر را به مسخره می و با هم شوخی های یدی می کردند. یک روز صبح آنها نتوانستند جلوی خود را بگیرند و با پدرم که بسیار محجوب و عجیب و غریب مینمود شوخی نکنند. نقشی اصلی این شوخی را برای جستندی، هنرمند پیشه ازیموجاسته کمدی که عادت داشت مقداری از وقت خود را در توالت بگذراند و روزنامه های صبح را در آنجا بخواند، کشیده بودند. قضیه از این قرار بود که آنها محل نشیمن توالت را سیمکشی کردند و وقتی دندی به توالت رفت، جریان برق را وصل کردند. یک لحظه گذشت و هنرپیشه مزبور از توالت بیرون پرید و فریاد میکشید که میخواستند او را بکشند کمی بعد پدرم که ماجرا را فراموش کرده بود یک راست به توالت رفت همکارانش دوباره جریان برق را وصل کردند اما این بار کسی از در توالت بیرون نپرید فقط صدای بلندی برخاست و بعد سکوت سنگین همه جا را فرا گرفت یک نفر گفت که شاید جریان برق قوی بود و بلایی به سر پدرم آورده است. بالاخره همه آهسته به طرف توالت رفتند و در را به زور باز کردند. پدرم بی حرکت و دمرو روی زمین افتاده بود. با ترس دورش ایستاده بودند و او را نگاه می کردند که ناگهان سرش را بلند کرد. بر لبانش آن لبخند مشهور که بعد خوابه به آن از روی پرده سینما میلیون ها نفر را مسهور کرد دیده میشد. شد. همانطور که روی زمین افتاده بود انگشتش را روی بینی گذاشت و با لچبازی با آنها فهماند که دماغشان سوخته است. من گمان می کنم که پدرم را در آن ماهیت لچباز می دانستند و یا لاقل معتقد بودند که روح همکاری ندارد. اگرچه او آرام و معدب بود. ولی بر سر نحوه ایفای نخشای خود با کارگردان به بحث می پرداخت و سرسختی نشان می‌داد. در آن روزها در فیلم کمدی باید تعداد حرکات زیاد می بود و حرکات به سرعت انجام می گرفت و از این رو ابتدایی و فاقد زرافت بود. هنر پدرم پانتومیم نمایش به وسطیلی حرکات بر اساس لطف و زرافت و تقریبا شبیه حرکات بالت بود. وقتی می کوشید این حرکات را روی پرده بیاورد، صدای کارگردان در می آمد. کارگردان می گفت این حرکات خیلی آهسته است، مقدار زیادی فیلم می برد و مورد علاقه تماشاگران نیست. وقتی اولین فیلم پدرم بیرون آمد، به نظر می رسید که حق با کارگردان بوده است. این فیلم شکستی به شمار می رفت. همه معتقد بودند که این انگلیسی کوچک گمنام، که به وسیله آقای سنت کشف شده است هیچ قریه و استعدادی ندارد میگویند که همه افراد استودیوی کیستان بر این عقیده بودند که لباسی برازنده از لباسی که پدرم در اولین فیلم خود پوشیده بود یعنی کطه فراک انگلیسی و کلاه بلند لبهدار برای هنرپیشه کمدی لازم است به این ترتیب از خرتوپردهای استودیو لباس بلگرد کوچولو ساخته و پرداخته شد ولی پدرم یک بار به من گفت که در واقع این لباس سالها پیش از آن به وجود آمده بوده است. بعضیه آن از این قرار بوده است که سالها پیش یک شب که پدرم در یکی از تماشاخانه های لندن نمایش میداد مدیر نمایش دیوانوار پیش او آمد و اطلاع داد که انرپیشه کمدی اول نمایش بیمار شده است و یک نفر باید به جای او بازی کند. آیا از دست پدرم کمکی برمیآمد؟ هالنرپیشه کمدی مرد تنومندی بود و لباسهایش برای پدرم بزرگ بود. شلوارش گشاد، کفش‌هایش بزرگ بود. در عوض کلاه ملون او برای پدرم کوچک بود. زیرا سر او از هالرپیشه بیمار بزرگتر بود. پدرم گفت: من این ها را پوشیدم و به این ترتیب ظاهر و سر من که جزء شخصیت من شد، به آمد. وقتی روی صحنه رفتم همه از دیدن لباس های گشاد برای اندام کوچک من به خنده افتادند. من نقش خود را که قرار بود در پایان آن توی یک تشت بزرگ آب بیفتن بازی کردم. در این موقع بود که شلوار گشاد مثل مشک باد کرده روی آب تلوتلو میخورد و پاهای مرا به حالت شناور نگه میاشت. شخصیت ویلگرد کوچو با این لباس به وجود آمد. این تیب نه از روی مطالعه و طبق نقشه بلکه از اعماق روح پدرم بیرون آمد. در واقع این شخصیت نهانی پدرم بود. کودکی که هرگز رشد نکرده، گرسنه و شنپوش است اما با وجود این تمام جهان را به مسخره میگیرد. وقتی جای پدرم در کیستون محکم شد او در صدت برامد که خوبی امون سیدنی را در وارد کردن او به گروه فردکارنو کارنو جبران کند از این جهت از او دعوت کرد که به کیستون ملحق شود آقای سنه چونین به یاد می آورد سیدنی خیلی خوب بود گرچه هنر پیشیگی او به خوبی پدرت نبود اما او مغز متفکر خانواده در امور کسب با زندگی بود از این رو اداره کارهای پدرت را در دست گرفت با گذشت زمان و رونق کارها و افسایش محبوبیت پدرم اعتماد به نفس او نیز زیاد شد او کم کم درباره نهبگه اجر و در, در های مختلف بیشتر اظهار نظر می کرد. او فقط برای اینکه اظهار نظر و مخالفتی کرده باشد بحث نمی کرد. او آدمی نبود که راضی باشد نقش تیپی را او کند در حالی که چارچوب و طرز کار او به واسعه دیگران تعیین شود از وقتی پایش را از در استودیو به داخل گذاشت شروع به مطالعه فنون سینما کرد و این کار را با همان شدتی انجام داد که در همه امور چه کار و چه تفریح انجام می دهد. آقای سنت می گوید شبهای متوالی او آخرین هنر بود که استودیو را ترک می گفت. او در استودیو می ماند تا تمرین و نمایش دسته های دیگر را تماشا کند. همه چیز را به سرعت یاد می گرفت. هنرجوی قابلی بود اواخر همین سال پدرم نمایش های خود را خود مینوشت و کارگردانی میکرد در سال 1914 اسی و پنج فیلم برای کیستون تهیه کرد و در سال 1915 با مزد هفتگی ده برابر سابق با اسانای همکاری کرد برای اسانای چهارده فیلم تهیه کرد و سپس با مزد ده هزار دلار در هفته با کمپانی میوچول قراردادی امضا کرد و برای این کار 150 هزار دلار پیش گرفت. به این ترتیب مزد سالانه او به 670 هزار دلار رسید و این سابقه برای هنرپیشگان دیگر شد که چنین مبلغی بخواهند و بگیرند. در آن موقع پدرم 26 ساله بود. فقط دو سال پیش از آن در 24 سالگی یک هنرپیشه ساده تماشاخانه بود. آقای سنت می‌گوید، اما اینکه او چطور در عرض دو سال توانست هفت ده هزار دلار در این مملکت درآمد داشته باشد برای این بود که نابخه بود این پسرک انگلیسی استعدادی درخشان داشت پدرم تا هنگامی که سفر مشهور خود را به نیویورک نکرده بود از میزان محبوبیت خود تصور درستی نداشت امو قبل از او برای بستن قراردادش با میوچولکمپانی کمپانی به این سفر رفته بود پدرم در دستشوی قطار ریش میتراشید که ترن در ایسکای و نیومکسیکو توقف کرد او همینطور بیهدف از پنجره ترن به بیرون نگاه میکرد که دید در حدود دو هزار نفر جلوی ترن جمع شدهاند. پدرم خیال کرد که این عده برای تهنیت و استقبال شخصیت مهمی که در ترن است جمع آمدهاند. با صورت نیمه تراشیده بیرون رفت که ببیند این شخصیت کیست با کمال حیرت دید که یک نفر از میان جمعیت فریاد زد خودشه خودشه چارلی چاپلینه. همین استقبال پرهیجان در سراسر کشور در انتظار او بود حتی روزنامه موقر نیویورک تایمز ورود او را با حروف درشت با این جمله در صفحه خود اطلاع داد. به اینجا رسید رویای پسرک مقیم بیغوله های کنینگتون لندن به حقیقت پیوسته بود و آن هم در چه مدتی کوتاه. او بزرگترین، نامآورترین و محبوبترین در پیشه کمدی جهان شده بود اما این لحظه افتخار سردی مخصوص خود را هم داشت بابا سالها بعد به من می گفت این جشنی بود که همه کس از آن اطلاع داشت اما من در تمام نیویورک به جز امون سیدنی هیچ کس را نمیشناختم. جمعیت ام بوکی مرا دوست داشت اما من یک دوست نزدیک هم نداشتم که با او گفتگو کنم. احساس می کردم که تنهاترین و بیکسترین ترین مردم هستم. اما با وجود بی کس تنهایی پدرم از محبوبیت شگرف خود استفاده کرد. تقاضای دستمزد خود را سه برابر کرد و کمپانی هم آن را پذیرفت. میتوانم تصور کنم که کمپانی چقدر از اینکه بی سر و صدا در هالیوود با او قراردادی امضا کرده بود، متأسف بود.